بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا مولاي يا صاحب الزمان هذا يوم الجمعه وهو يومك المتقوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك و قتل الکافرینه به سیفک و انا یا مولای فیه ضعیفک و جاروک و انت یا مولای کریمون من اولاد الکرام و معمورون به زیافت والاجاره فعظفنی و عجرنی سروات الله علیک و علا احل بیت یکی از دانشمندان قرن نوزده انگلستان این دانشمند البته امدتا دستی در فلسفه داشته و فیلسوف بوده به نام توماس کارلایل از نظر عظمت این آدم همینقدر کافیست بدانیم که وقتی که از دنیا رفت او را بردن و در قبرستان ویس در لندن که جای بزرگان علم و عدب انگلس تو در تاریخ بشر پهلوان های آمدند و رفتند و تو که صاحب نظری و دستندرکار هستی نظر علم و عدب ده نفر رو به عنوان پهلوانانی که خودتو بشه اعتقاد داری معرفی کن در طول تاریخ بشر پهلوانان عرصه های علم و عدب البته شگفتابر هست که بگوییم که این فرد دانشمند و این فیلسوف مسیح انگلیسی اولین پهلوانی که معرفی می کند وجود مقدس پیغمبر اسلامه. میگه به نظر من پیغمبر اسلام اولین قهرمان عرصه های علم و عدب و دانشه. نه تنها این اظهار و این اعتراف رو می کند بلکه این آدم یک کتاب در همین ارتباط می نویسد به نام ده دهروزه hero به زبان انگلیسی یعنی پهلوان heroes یعنی پهلوانان که بعد این کتاب از زبان انگلیسی به زبان عربی ترجمه میشه تحت عنوان الابطال ابتال با طای معلف، بتل باز به عربی یعنی پهلوان نزدیک 40 50 سال پیش این کتاب به فارسی هم ترجمه می شود کتابی که ملازم می کنید مقابل من هست همون کتابه تحت عنوان زردگانی محمد، این کتاب فارسی هم ترجمه شده، چیزی در حد چل سال بیشتر بلکه پنجاه سال پیش در تبریز این کتاب به این شکلی که ملازم میکنید چاپ شده. قسمت های از این کتاب بخوام براتون بخونم تا به نظر این آدمی که مسیحی است و مسلمان نیست، ببینیم رمز عظمت پیغمبر اسلام در کجا خوابیده. چرا این بزرگوار به نظر آقای کارلایل اولین پحلوان معرفی می شود در عرصه علم و دانش بشری. میگه محمد نزد کسی از استادان بشر درسی نخوانده و خطی ننوشته و صنعت خط هم دران عوان در بلاد عرب جدید العهد بوده است. هرچه از اسرار عالم و علم الهی بروه مکشوف شده به واسطه یه روح قدسی بوده است که از عالم مجهول انوار آن به قلب او تابش کرده. در زندگی پیغمبرش ها ما سابقه درس خوندن اصلا نمی بینیم پیغمبر سابقه تدرست نداره تلمز نداره. که بگیم پیغمبر اسلام درس خانده مطلقا خب پس این همه حرفا که آورد تحت اوبان قرآن کجا آورده میگه تمام اینها از عالم مجهول انوارش به قلب پیغمبر اسلام تابش کرده. محمد از تلقی درس بی نیاز بوده اصلا نیاز نداشته کسی به او درسی رو تعلیم بکنه زیرا که از شار جهان بروی کاملا مشهود و عیان بوده و از کسی اقتباس فکری نکرده است باز میگه هر سخنی که از زبان او شنیده میشد کلماتی بوده که از گوهر حکمت های بلیغه و عقل ریخته شده و گفته هایش شبهات و معضلات و کشف و حل میکرده و برای زندگی و شرافت و تهذیب اخلاق و سعادت جامعه انسانی بهدرین دست دور بوده خب پس رمز عظمت پیغمبر بزرگوار اسلام در نزد این دانشمند غیر مسلمان انگلیسی فقط در اینه اولا درس خونده نبوده سابقه تحصیل پیغمبر اسلام نداشته نیازی هم به این متب نبوده چون پیغمبر هر هرچه میگفته از عالم مجهول انوارش بر او تابش می‌کرده عالم مجهول یعنی عالمی که عالم مادی معمودی نیست و هر سخنی هم که می‌گفته به عنوان گوهره‌های بلیغه است به عنوان سخن عاقلانه و خردبندانه است هر حرفی که می‌زده شبهات و موذرات رو کشف و حل می‌کرده این رمز عظمت پیغمبر بزرگوار اسلام را دیدی هیچ چیز دانشمند نیست البته این یکی تنها نیست شاید به مناسبت بحث قرآنمون در آینده هر نوبتی از یک نویسنده غیر مسلمان براتون بیاریم بخونیم. تنها چیزی که باعث شده اینها در مورد پیغمبر مایه همچین نظری رو بدن و همچین مدبی رو ارائه بکنن وجودی همچین کتابی اسمش قرآنه که متاسفانه البته در میان ما محجور این کداب افتاده این قابل تعرف نیست یعنی یا چیز مشفود ملموس خیلی خیلی واضحیست چرا حال در بین ما محجور مونده چون به ما خیلی موف رسیده قدم چیز که براش راحت خلاص فراهم بشود قدر نمیدونه اگر کسی دنبال مطلبی رفت و براش زحمت کشید اون او قدر خواهد دانست ما همطور به این عرص بردیم به نام قرآن رو عظمت و بزرگ این کتاب رو کسی میدونه که دنبالش رفته باشه و بررسی و تحقیق کرده باشه ازا قصد بران داریم اگر مناسبت خیلی خاصی در این سلسل سخنرانی ها به وجود نیاید که ناچار بشیم دنبال اون مناسبت بریم مثل قدیر که حالا پیش را داریم و حتما من باید دار اون باره سخن بگیم براتون غیر از این مناسبت ها این شانا بحثمون به صورت مسلسل اگر زنده بمانیم در باری خود قرآن خواهد بود یک سری بینش دیگر. یک سری در واقع در یافتهای دگری از این کتاب عزیز خدا و از کتاب عظیم خدا داشته باشیم ما خب قرآن چه هست اصلا؟ حالا ما یه خوده بیاییم در مورد ماهیت این کتاب سخن بگوییم پیغمبر وقتی میاد از طرف خدا ادعا میکنه که من با خدا مرتبط هستم حتما باید کاری انجام بده که انسانهای معمولی نتونن اون کار رو انجام بدهند تا بپذیرن که او پیغمبر خداست چون این کارو نکنن هیچ کس قبول نخواهد کرد که اونا با خدا ارتباط دارن من میگم من پیغمبرم بگم به چه برهان پیغمبری بگم چون قضا میخورم یعنی برهان پیغمبرو نیست همه دارن قضا میخورن که من پیغمبرم چرا چون بالانس میذنم بالانسو دلیل پیغمبر بودن نیستش که کلی ژیمناستا بالانس میزنم مثلا ورزش کنید یک کاری باید انجام بده که انسانهای دیگه از انجامش ناتوان باشن عزت موسی علیه الصلاۃ والسلام عصاشو پَرد میکنه القى عصاک خب عصا رو که پَرد میکنند یک دفعه به شکل یک دونه سعبان در میاد یعنی یک اجدها به قله قدیمیا یا ماره بوآ به امروزی ها ماره گنده هستن که میبلندن اینجور اینجور در میاد پیرون این چی کرده عزت موسی کرده نه ازلی موسی نا کرده خدای متعال به قدرتی رو میداد که او به اذن خدای قدرت رو اعمال میکنه کارای دیگه انجام میداد، دست بر این تو، میاره بیرون دست شروع به درخشیدن. به میگن يد بيزا. این کار ازات موسی علیه السلام او کارای دیگه میکنه. میفته داخل نیل. خدای متعال نیل رو براش باز میکنه. و خوش میشه اصلا نیل از کف نیل را میفتن میرن. فرعون و سپاهیانش میان دنباله که اینا رو بگیرن، نیل به هم میاد. غرقشون میکنه. خب این کار رو ممسال سلاماق را صدا می کرده ایسا مسی که البته بیشتر از این ح او علابر کور مادرزاد رو شفا می و بیماری بیچی رو به قول پزشکان یا بیماری برست رو به کلی از بین می برده. حتی مرد هم زنده میکرده کارها رو میکرده و خبر از غیب می دادهه مسیح علیه السلام خب اینا بنی کارا رو انجام بدن پس هر پیغمبر از طرف خدای متالمیاد باید که یه همچین کارای خارقل انجام بده که در زبان معمولی ما به این کارا میگن معجزات قرآن میگه آیات و بیانات البته و کلمه قرآن خیلی زیباتر هم استش اینا این کارا رو انجام میدن لذا هر کس شما ده ادای پیغمبری کرده ولی واقعا پیغمبر نبوده هر جا باش صحبت کردن که خلاص موجزت چیه اونجا کم آورده مثلا کسروی خب احمد کسروی دعاوی متعدد داشت داره بارد دعاویو نمخواهم بشم که چه ادعایی کرده ولی سرانجام ادعای پیغمبری میکنه دینی به نام دین پاک دینی میابرد و به جای قرآن کریم که داره ورجاوند بنیاد رو میاره هر وقت به اون میگن خالا موجزه تو چیه؟ میگه پیغمبر که موجزه نمیخواد که موجزات من حرفامه این حرف رو میزنه چون نداشته علی محمد باب شیرازی ادعای پیغمبری میکنه وقتی میگن ادعای پیغنبری که تو میکنی به چه برهان این کار میکنی تو میگه برهان من کلمات منه حال هم خیلی جالب البته بخشد تو میگم کلمات خوشگلی داره که دقیقا نشانه دهنده جنونشه البته نه پیغنبریشه ولی منظورم این بحث هر کسی که اومده ادعای پیغنبری کرد اگر که پیغمبر نباشه مشکل پیدا میکنه چون هیچ کاری نمیتونه انجام بده یه سری حرف ممکنه بزنه اما کار انجام نمیتونه بده که مردم قبول کنن که او واقعا پیغمبر خداست حالا پیغمبر بزروار اسلام این نکته فوق اداده حائز اهمیته بسیار بسیار نکته برجستهیه به این مطلب دینات داشته باشین موسا اول یک کاره انجام میده خارق عادت مردم قبول میکنن که او پیغمبر خداست آقای زیخوب گوش پدیم اتبا با بیگیرش دیگه قبول میکنن که او پیغمبر خداست وقتی مردم قبول کردن پیغمبر با دیدن کارهای خارقال عادش بعد میگه حالا کتاب به نام تورات براتون رو بردم. نمیگه تورات من موجزه رو نمیگه نه موجزه ای او کارهای دیگری بوده مردم با دیدن کارهای اجازامیز او قبول بیکنن که او پیغمبر هست وقتی قبول کردم پیغمبر رو برایشون چی میاره؟ کتاب قانون به نام تورات میاره ایسا مسیح هم همینطوره حضرت ایسا مسیح علیه السلام چی کار میکنه؟ یک کار خارقال العاده انجام میده وقتی مردم قبول میکنن که این کارا کار انسان عادی نیست یعنی قبولش میکنن منوان فرستاده خدا بعد از این است که این بزرگوار کتاب انجیل براشون میاره یا تعالیم به نام انجیل به اونا میده انجیلش موجزش نیستش دقت داشته باشید دستورات او که به نام انجیل آمده این به عنوان بیان اجازامی تلقیل نمیشه خودش هم نگفته انجیل من موجزه من میگه من موجزه دیگه دارم اونا رو شما نگاه کنین قبول کنین که من پیغمبر خدا هستم وقتی با دیدن اونا قبول کردیم تازه براتون کتاب بیارم اون وقت من اما وجود مقدس پیغمبر بزروار اسلام در عین حالی که تمام موجزاتی را که تمام رو که پیغمبران دیگر داشتند علاوه بر همه اونها پیغمبر اکرم یک دونه کتاب میاره این حرف بسیار بسیار حرف بزرگ و خطیر است. چیه بزرگ و خطیر؟ اون اینه مردم دنیا جمع بشن همشون جمع بشن بزرگان دانشمندان اساطین فلسفه اساطین علم همشون جمع بشن وردارن بیارن چیزی نیست این قضیه یک دونه سوره از سوبر قرآن وردارن بیارن لذا این حرف رو برای اون زمان نگفته حالا ادبیات عرب خوب جلو بوده بر شعر و شعری خیلی جلو بودن خودی هم ماجرای داره البته این زمان رو پیغمبر در نور دیده یعنی آمده میگه برای تمام زمانها میگه من پیغمبر خدا نیستم باشه این کار منه وردارید بیارید کتاب قانون پیغمبر اسلام همون کتاب اجازیشه اجازو عین قانونشه یعنی این کتاب که نامش قرآنه در عین حالی که بشر رو ناتوان میکنه از این که وردارن یه دونه سورش رو بیارن یک دونه سوره اول میگه که مثل این کتاب بیارید بعد قرآن تن از میکنه میگه ده تو سورش رو بیارید بعد تنزل پیدا میکنه فقطو به صورت مثله یه دونه صورتش رو بعد دارین بیارین و نخواهی توانست حالا از چه جهد نخواهی توانست این بحث های بعدی ماست چرا قرآن رو انسان ها نمیتونن مانندش رو بیارن این بحث که بعدن خواهیم کرد پس بنابراین پیغمبر اسلام برنامه اعجازیش اینه اعجازش کتابشه چرا حالا؟ یک نکته هم اناعت داشته باشید نکته فوق العاده قابل توجهیه هیچ پیغمبری نیومد هیچ شما مطمئن باشید انقدر که ما سرگذاشت پیغمبران رو بررسی کنیم هیچ پیغمبری نیومد بگه که من آخرین پیغمبر خدا هستم کتاب هم آخرین کتابه هر پیغمبری آمد به پیغمبر بعد از خودش بشارت داده و بشارت بر وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام در کتاب های همه پیغمبر اومده تو یه سری کتابه خب نابود شده اونایی که هست همه اشتش پیغمبر پیغمبروان مطلب داره همش داره. همه این پیغمبران پیشنم یه حرفی میزنن میگن او پیغمبری که قرار در آخر و زمان بیاید آخرین پیغمبره اینم میگن و کتابش آخرین کتابه شد حالا این پیغمبری که آخرین فرستاده خداست و کتابی که آخرین کتاب علم الهی است که در برگیرنده علم خدای متعال قران کریم این کتاب یه جور فرستاده شده این ان شاءالله بعدن ثابت میکنیم ما صرف بیانی حرفهای من نیست یه جور فرستاده شده که هر کسی با هر درجه ای از دانش هر درجه ای میخواد باشه سراغ این کتاب برود از این کتاب بیتونه استفاده بکنه شما در دنیا کتاب مشابه این هرگز نخواهید یافت هرگز نخواهید یافت این قرآن تنها کتابیه که هرکس با هر میزان دانش و معلومات و اطلاعات سراغش بره از این کتاب استفاده میکنه حالا بعد خیلی نسی کاری نها نکنیم براتون فلیان لورن انسانو الات آمین یا آی قرآنه فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ انسان باید به قضاش نگاه بکنه خب یه آیه چند کلمه داره فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ 4 تا کلمه بیشتر نداره چهار تا خب از این چند تا معنا میتونیم بکشیم بیاریم بیرون تصور من بر اینه که هر کس در هر رشته علمی صاحب نظر باشه از این آیه میتونه استفاده بکنه یک نفر از قضاشناسه شون تاووس تغذیه داره این آیه رو بهش میدن میگن از این آیه چی می کی بیرون فالین داره الانسان و میگه از این آیه می کشم بیرون که انسان باید مطالعه کنه برای زندگی روزمرهش چند کالری لازم داره برای تامین این کالری باید چقدر نواد قندی بخوره چقدر مواد پروتئینی استفاده کنه چقدر چربی استفاده کنه؟ چقدر دییتامین های محلول در آب میخواد چقدر دیتامین های محلول در چربی میخواد تا از این آیه استفاده داره میکنم به یک نفر دانشمندی که در جهت گیاه شناسی این ورود داره. میگن تو از این هایی چی میفهمی؟ میگه من از این های اینجوری میفهمم. بری سراغ غذا که از زمین می رویید غذا های اسیلتر و طبیعی تره. خب ببینید که اینا چطور رشد پیدا میکن. چطورمو پیدا میکنن آوندهای چوبی چی آوندهای آبکش تر گیاچه ای من از این آیه اینو نمیفهمم به یک اقتصاددان میگن تو چی حالید میشه میگه من خوب حالیم میشه از این آیه به قزات نگاه کن ببین وضعیت مملکت در زمینه تولید این قضا چطوریه به حد خودکفایی گندم رسیده پره رسیده اینو از این آیه دارن بیرون به این نفر عالمی که علم اجتماع بلده سوسیولوژی بلده میگن تو از این آیه چی حالیت میگه من خیلی حالیم نگاه میکنم آیه داره به من دستور میده از نظر اقتصادی از نظر انسان شناسی مراقب باش اینجور نباشه در سر سفره تو همه نو غذا باشه همسایت گرسنه بخوبه ا یه دفعه نگاه میکنی ببینی به یک دون آیه چهار تا کلمه گفته هر کی با هر میزان دانش از این آیه استفاده میکنه کدوم کتابی تو دنیا اینجوریست این یه آیه نیست خدا بخونم بخونم تا خدا میدونه بخوام براتون به تا وعد و زب بخونم اینقدر ما تو قرآن از این دست ها آیات داریم که آدم های عادی ساده نگاه میکنن و توش یه مدب دار میارن بیرون آدم های عمیقتر نگاه میکنن یه مدب دیگه میشوند آدم های خیلی عمیق به کسی گفتن تو این آیه قرآن برات چی تدایی میکنه؟ آیه قرآن کدومه؟ بکنه؟ این آیه لوکانا فیه ما الهت ان الا الله لپسدتا قرآن میگه اگر غیر از الله معبود دیگری وجود داشت در کله هستی این مجموعه هستی به هم میریخت ریخت یک فرد آمی بگو از این برهان قرآنی چی علید میشه میگه من حالیم میشه اگه در ممدکتی دوتا تا شاه باشه دوتا رهبر باشه با هم دعواشون میشه در کل مملکت هستی هم تو تو خدا باشه و با همدیگه دعواشون میشه او میگه من اینو حالیم میشه به بو علی سینا میگن از این آیه چی حالیت میشه میگه من برهان تمامو عالم میشه یه برهان فلسفی است اونو حالیم میشه من آیات قرآن یه همچین وضعیتی دارند شما هر چی باشی یا نظر علمی هر مقدار داشته باشی یا سراغ قرآن بری قرآن به تو مطلب میده هیچ کتابی در دنیا اینجوری نیست، هیچ کتابی، بدون شک حالا چرا این کتاب آمده برای آنکه که نیازهای انسانی رو از زمانی که پیغمبر بزرگوار اسلام به رسالت الهی مبعوض شد اله زمان نهازا، بلکه تا قیامت این کتاب اومده جوابگو باشه لذا از پیغمبر اسلام این مطلب نقل می شود اون عرب که این حرفا حالیش نبود که از پیغمبر اسلام نقل می شود که خدای متعال سوره اخلاص را قل هو الله احد و آیات اول سوره حدید رو خدا نازل کرده يعلم ما يجل فلر و ما يعرج و و منها اینا رو نازل کرده چون خدا میداند در آینده مردماني ژرفندیش خواهند آمد که اونا این آیات حالیشون خواهد شد یک کتاب یه همچین جامعه‌ای داره خب پس بنابر این قرآن کریم کتابی پایان ناپذیر یعنی زیبایی این کتاب تمام نشدنیه اینا ادعا نیست به والله ادعا راجب تک تکش باز براتون خواهیم کرد که خیلی جاها قران کریم رو انسان میگه تا اینجاش رفتم جلو ولی بیشتر از این داره بیشتر از این من نفهمیدم حتی خود آیه سری قران کریم حتی آیه ساده قران کریم او یک معنای ظاهر داره یک معنای باطن داره او باطنه باطن داره و باز باطن باطن باطن داره این چه کتابیه لغات یه جوری انتخاب شدند این جلسه جرسه بد رو زنده باشیم یا جلسه بدتر بارتون مخواهیم گفت. لغات در قرآن کریم یه جور انتخاب شدند که اگر شما بیایید یک دونه لغت رو از یک آیه بکشید بیارید بیرون و بخواهید به جای اون لغت لغت مشابه بذارید که همون معنا رو به رسول محال چنین چیزی ناچارید مجددن همون لغتی که از جا گرفته و بیرون همون سجاش بذاری تا اون معنا رو برسونه پیغمبر اسلام سخن بسیار داره این کلام پیغمبر نیست دقت داشته باشید پیغمبر اسلام کلام زیاد داره حداقل دقیق بسیار از فرماشاتشون رو کتاب نحچ و فساها جمع کرده بید بگید با قرآن مقایسه کنید تفاوت نوزارده شد در تومنه اونا بیانات پیغمبره این کلام کلام خدای متعال. خودشم میگه انقدر عظمت داره که لو انزل الله القرانه على جبلن لرایته خاشعا متصددا من خشیه الله. اگر ما این قرآن رو به کوه ها میفرستادیم به کوه ها نازل میکردیم می دیدی که کوه ها از شدت خشیت و ترس از خدای بوتان چون قرآن عظمت خود خداست تجلی خود خداست و این ثابت شدنی البته کوها به خاطر تجلی عظمت خدا از همدیگه تکه تکه می شدن یه همچین کتابیه اون وقت تنها راهش هم هست این نه گذافه است نه اقراقویه و نه مبالغه کردن در مسئله اصلا یه نیستش. دنیای ما به این بدبختی نیفتاده مگر به خاطر این که از این کتاب داره دوری میکنه و داره کتاب رو خودش نمیدون داره خودش رو میکوبه در واقع به این ترتیب امروز مسیحیت جواب نمیتونه بده به نیازهای انسان ها کما اینکه اولش هم نمیتونه جواب بده چند سال پیش ایک یکی از مجلات ما یه تصفیر انداخته بود از یکی از کلیسه های استوکل به سوید جشن هم به جوال خیلی روشن شد اونجا یک سریعت داستان های انجیل رو در کلیسا سن درست کرده بودن بالرین های زن لخت لخت, لخت. قلب کلیسا بکنن زن لختی بیرن اونجا با موان بالرین که با کارهای بالشون بحث داستان انجیل این شده شما سراسر انجین رو به چلونش به چلون چی توش پیدا میشه از اول تا آخرش نگاه بکن سه تا مطلب ایشتر تو انجین نیست سه تا دونه بیوگرافی ایسا مسیه بعد هم برو سراغ چی سراغ موجزات ایسا مسی بعدش هم آخره دو تا سه تا دستور اخلاقی همین, همین. همین و همین او کجا یا توراتش بدتر از انجیر او دیگه فاتحهش خونده است به نام موسی چی خواستن گفتن به نام موسی هر چی خواسه خرابکاری کردن به نام انبیا بنی اسرائیل هر چی خواستن به هم بافتن تو کلام توراتشون بعد عتیقشون یک کلمه در تورات راجع به مرگ نیامده جهان بعد از مرگ نیامده عواقب بعد از مرگ. اصلا نیکی بکن در دنیا اینجوری میشه بدی کن در دنیا اینجوری نشه محصول زیاد بشه همش این مایه هاست این هم. اون کتاب عوستای زرداشتو نگاه کن البته عوستای زرداشت شرس کنن که عوستایی نوشتن به نام زرداشت غالب کردنش اون تو چی هست از اول تا آخرش نگاه کن چی داره توش تمام عوستا هر پنج قسمتش فقط در برگیرنده یک سری سرود همین و همین سرود, سرود. یا دو آقال به تعبیر بهترش باقیم اگر مال مال خود زردوشت هم باشی که نیست مطمئندن مطلقا مال و مطلقا ماله اونیست الباد. اما این کتاب چیه؟ شما هرچی بخواید من دوی کتابتون نشون میدم. هرچی بخواید. انسان چی نیاز منده؟ از بحث اولیه مبدع که توحید باشه تا بحث قیامت و معاد و در این وسط آن چطور لازم داشته باشی؟ اون دو بحث بحث های اساسیه. ابتدا و انتهای کار ما. در این وسط هرچی تو بخوایی بخوا. خود بحث روح در قرآن کریم فوقالات زیباست چه قرآن قشنگ استدلال میکنه یکی از بحث هایی که قرآن در... مطرم میکنه در این اطور بحث خوابه که تازه یواش یواش فرنگی ها بیدار شدن تو این زمینه قرآن میگه برید تو خواب مطالعه کنید اونجا خیلی شگفتی ها پیدا قاید کرد قرآن بحث تاریخ تعلیلی مطرم سرگذشت اقوام و ملت رو برید بررسی کنید حتی برید سفر کنید قرصی رو فلرض سرگذشت اقوام پیشین به کجا انجام میده برید نگاه کنید این رو بررسی کنید و تحقیق بکنید ایرو داره میگه جامعه شناسی قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم حرفای قرآنیه قرآن روانشناسی میگه روانشناسی رنگ میگه قرآن بحث پزشکی مطرح میکنه به شدت که با آخرین یافتهای فیزیکی ما هم دیگه منطبقه. قرآن بحث زمین شناسی مطرح میکنه، بحث آسمانا و کرات دیگر و موجودات با شعور در کرات دیگه مطرح میکنه. قرآن کریم حرکت کل هستی رو عنوان میکنه، نه حرکت زمین رو و نه حرکت خورشید رو، همه چی کُلن فی فلاکه یاسمون، همه چی در حال گردش و چرخش. در بحث علمی قرآنه. قرآن کریم بحث اخلاق مطرح میکنه. آیات اخلاقی قرآن کریم عجیب غریبه عجیب غریبه انجیل بوش نکرد این آیات قرآن... قرآنی رو که در زمین اخلاق هست او نکرده چه تو دستورش گذبسته ایسا مسیح علیه السلامه تو قرآن یک سری آیات اخلاقی ما داریم. کل اون چه که انسان نیازمنده است قرآن احکام زیبا آورده که در هیچ دینی نیست نماز آورده قرآن کریم که نماز صلاته تنها ان الفحش اول منکر یک دانشگاه به نام نماز قرآن آورده قرآن بحث روزه صاداره رو مطرح میکنه با تمام مشخصاتی که از نظر بهداشتی برای روزه وجود داره قرآن بحث میوه ها رو مطرح میکنه و شگفتی هایی که در میوه ها وجود داره قرآن حیوان شناسی برای اون مطرح میکنه مورچه رو, بر بر رو بررسی کن برو زنبور عسل رو بررسی کن اینا رو برسی کن و قرآن و قرآن و قرآن شما هر چه بخواهید هرچه بخواهید در این کتاب عزیز و عظیم آسمانی وجود داره و امروز در هستی غیر از این کتاب کتابی موجود نیست کتابی که بشه گفت آسمانی بشه اثباتش کرد هیچ؟ چیچه نمیخواه میگم تورات انجیر آسمانی توشون کتاب مدب آسمانی هم از اما مجموعش آسمانی نیست عبستان همینطوره ورق نمی کنه از پیغمبران پیشی هم کسی باقی نموده برامون دیگه این همین همی رو برامونده یک کتاب اومده حالا و این کتاب عرض کردم بزرگترین اشتباه یا خیانتی که داره دنیای ما انجام میده و بلعخص یهودیا بلعخص یهودیا شما دشمنی یهود کم نگیرید خدعه و مکت رو و نیرنگ و فریب اینها رو شما کوتاه و کم حساب نکنید اینا آدم هستند که به خاطر یک دونه سکه آذرن دنیا رو به هم دیگه بریزن در این شما هیچ زره تردید نکنید زیاده خواهی دارن میگن همه دنیا مال ماست همه دنیا تورادشون میگه این حرف رو نجاد برتر است فرزندان خدای هست این همه رو توراد میگه به اینا میده زیر بغلشون. این هم میگن دنیا مال ماست حالا هرچی در برابر ما باقید بیسته بعد نابود بشه خب چی میخواد بایسته قرآن میخواد بایسته مسلمونا میخوان بخوان بایستن بگن نمیزاریم. ها. حالا که اینه پس حملات بعد به قرآن بشود نوع حملات که به قرآن میشه منشه و مبدهش یهودیان هست منشه و مبدهش کتاب آیات شیطانی خاطرمون نرفته سلمان رشدی ملحد خب این کتاب رو که انترات پنگوان چاپش کرد خب یهودیستی صحیح نیسته هر نوع حرکتی علیه اسلام می شود شما بدانید پشت این ماجره یهود خوابیده و اینا به خاطر ارز کدم دنیا دارن همه چی رو به افتضاح می و انسان داره مقبون می شود در این میان های زمانه ما دارن مقبون می شود من یقین دارم باورم هست این انسان ها در زمان ما دارن لحلح می زنن برای یک دین آسمانی الهی یک کتابیست کتاب جالبیه به نام دین جهانی کتاب ترجمه فارسک شده از انشتن هستش خیلی جالبه واضح فرضی نسبیت و دانشمنده فیزیکتان بسیار محروب بر یازیدان هر دوش یک صحبت او کرده آقای احمد آرام ترجمهش کرد این کتاب رو میگه که یکی از بزرگترین انتقادات من به دو کتاب تورات و انجید عهد عتیق و عهد جدید این است که این دوتا آمدن خدا رو در شکل و شمایل انسان مجسم کردن و بدانید که این ادیان از بین رفتنی هستن از نظر من دینی جاودانه خواهد دود و دینی جهانی خواهد بود که خدا را در شکل و سیمای انسان مجسم نکرده باشه نمیگی حالا کدوم دینا من یقین دارم که اون میدونسته و نگفته ترسیده البته تنها دینی که خدا رو آن چنان که فطرت ما فطرت ما فطرت الهی ما برای ما بیانش میکنه این کتاب همون جور بیانش میکنه قران کریم وقتی میخونی مییابی این همون خدایی که تو لازم داری به نزدیک از رگ گردن به تو نزدیکتر است در این حالی که مانند تو نیست مانند هیچ چیز دیگه هم نیستش می یابی این قضیه رو به هر حال این کتاب این عظمت ها را دارد ما مسلمون ها وزیفه خیلی سنگینه خیلی سنگین چرا ما هم قید و بند خودمون رو برد داشته باشیم یعنی همه اعتقادات خودمون و هم عمل کردن به آن که باور داریم دیگران دارن ما رو نگاه میکنن هیچ کس از شما به قتل متيقن یقینن به اندازه من با دشمنان اسلام برخورد نکرده یقین دارم به این قضیه شما خیال میکنید اینه که مقابل ما میشینن به عنوان دشمن و مخالف وقتی میخوان حرف بزنن قرآن بلدن والله با بلد. اکثرشون قران الروا بلد نیست سبب اونن به قران اشکال میگیرن اونها امده اشکالشان این است به مسلمانها نگاه بکنید این مسلمانها بیانگر و معرفی کننده ای اسلامند. شما تو هزار نفر نوصد نفرش رو بنده ارز به ذرس سقاطه پیدا خواهید کرد که اگر به اسلام اشکال دارن اینا جا رو عوض کردن جا بین اسلام و مسلمان ها رو عوض کردن به اسلام کی اشکال میتونین داشته باشه کسی قرآن بلد باشه بخواد به قرآن اشکال کنه محال چنین چیزی محال چنین چیزی چون هر چه تو مقاید تو این کتاب هست روان هم گفته بر مبناه علم هم گفته مبارز هم میتربد در روز قیامت چیکار کار میکنن؟ میان سراغ ماها ماها رو به عنوان ملاک میگیرند پس حواسمون جمع باشه اگر به این دین علاقه من دیم. اگر که میخوایم در قیامت تخت محاقظه شدید خدا قرار نگیریم حواسمون نسبت با انچه که اعتقاد داریم خیلی جمع باشه یا ایها الذین آمنون لما تقودون مالا تفعلون کبرا مختن ان انتقولو مالا دفعلون به مردم نگید و خودتون عمل نکنید مسلمانی که در مقام وعز و تبلیغ نشستی خیلی خوبه کارت خدا پدرتو تو بیامرزه اما قبل از همه کس خودت عامل باش باز به قرآن نگاه کنید آمن الرسول به ما انزل علیه من رب بهی والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله پیغمبری که سخن میگه میگه مردم نماز بخانید نماز ستون دین شماست خودش اول با میشه جلو میگه سلو کما رعی تمونی او سل. نگاه کنید ببینید من چطور نماز بخونم از من یاد بگیرید او پیغمبر اگر بحث انفاق و مطرح میکنه در قرآن مقدس این بحث زیبای انفاقی رو خود پیغمبر اولین منفقه اگه بحث ایثار مطرح میشه به مراتب از انفاق بالاتره اولین کسانی که ایثار میکنن و یعصرونه علاو انفسهم و کانا به هم خصاصه خاندان پیغمبر ماست مردم میبینن اینها رو بنابراین هر کسی که دلش بخواد انشاءالله به هشته مینوسرش رو ملاقات کنه خدای متعار رو به رضایت ببیند مراقبه این مطلب باشید رو نگاه بکنن عمل ما رو نگاه بکنن عمل ما مردمان خواهند آمد چون این اسلام مشکل خودش نداره. مشکلی این است که ما میخواهیم آنچه خودمون عمل میکنیم و به نام اسلام قالبش بکنیم. این کار مشکل میشه اون وقت مردم به عمل من نگاه میکنن دروغ دارم میگم. مال مردم دارم میخورم. خلاف میکن و خیلی کارهای های دیگر انجام میدم. به نام اسلام تمام میشه و من به چهره اسلامی دارم این کار رو انجام میدم. امیدوارم خدای مطال به همه ما توفیق شناخت و درک. و عمل به آن چرا که میدانیم و معتقدیم عنایت بفرماید ان شاءالله تعامل میکنیم صبر میکنیم شما هم لطف بفرمایید و ضمن اینکه الله تعالی به عنوان وسیله ممکنه فراهم شده باشه کاغزهای خدمتون تقدیم میشود اونایی که دلشون میخواد سوال دارن البته مرقوم بفرمایید هم وقت زیاد ترین دو ساعت قریب یک رو به نو وقت داریم ان شاءالله برای پاسوگوت شما حتما کار شده باشه دوستانم که علاقمندم میخوام بالاخره شفای بگم در نظر ما بلا مانع خاطر بود خیلیم استقبال میکنیم واس بنابراین خط به این قسمت از سخن رو با صلوات بر پیغمبر و خاندان پیغمبر آه. سلام علیکم ان شاءالله که خسته نباشید من فقط یه خواهشیت دوستان دارم. اینه که موقعی که ما برای استراحت و در موقع پذیرایی میریم خیلی خوبه. سوال اگه بشه سوال خوبه. بایستم پاسخاتون رو دریافت کنید. مطابقه اینکه بی نشه و وقتم گرفته نشه ما وقت برای پرسش و پاسخ گذاشتیم. اینجا هم برگه هایی توضیح میشه. میتوانید داخل. برگه ها بنویسید هم میکروفان هم هست از میکروفان هم میتونید استفاده بکنید و شفاحت حالات خودتون رو مطرح بکنید من برای که بیش از اصدن وقت رفت نشه از آی دکتور خواهش میکنم که تشریفی رن اینجا به حق صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجام بسم الله الرحمن الرحیم یه چیزی پیش پیش ما عنوان کنیم ما از هر نوع فکری از هر نوع ایدهی از هر نوع انتقادی اعتراضی حتی اینکه مخالفین ما و مذهب ما و دین ما در اینجا بیان و از این تیریمون استفاده کنن بسیار استقبال میکنیم من خودم به شدت معتقدم وقتی افکار با هم دیگه برخورد پیدا بکنه این فرمایش از امیر المومنینه اون حقیقت زاده می شود از ربو بعض الرعی به بعض یا تولد و منخست ثوابی فرمانش مولای ما حضرت علیست حرفا رو به همدیگه بزنید حرفای متقابل را و متباین رو که از برخورد حرفا و برخورد اندیشه ها حقیقت چی میشه شود زاییده می شود که ما خیلی خوشحالیم استقبال هم می دعوت هم میکنیم حتی که تشریف یارن اینجا کسی حرفی برای گفتن داشته باشه. چون اعتقاد ما اینگه غیر از شیعه اسنا عشری هر چه هست باطله معاتلتون نکنه. این اعتقادمونه. برای بحث و گفتگو همواره هم آماده‌ایم. اینجا هم نایم. بعدن ما اینو بیان ما میذیم خدمتشون. خیلی نگرانی مطلب نباشه که حرفی که میزنیم خلاصه همه جا قابل دفاع هستش. تفاوت منطقی و اساسی دیدگاه تناسخ و دیدگاه دین اسلام در چیست؟ دقیقا در دو نقطه مقابل هم قرار دارن. یعنی اصلا نقطه اشتراک با هم ندارن چون نمیشه چون شباهت های فراوانی چی گفته این شباهت های فراوانی کجا تو در اسلام همچه شباهت های پیدا میکنیم مسئله تناسخ تناسخ اصلا مال ما هم نیست این مال هند قدیمه اعتقاداتی بود و بودایی ها هم همین حرفو میزنن بودایی ها معتقدن که یکی انسان وقتی که در واقع اون روانش از تن برون را به قول خودشون این به جایی نمیره این میاد تعلق پیدا میکنه این روان به یک تنی که تازه به دنیا آمده اسم این تناسخ میشه و این نظر ما باطله به تمام معنا نه نظر ما باطله نظر علم باطله و نظر عقل باطله در میان فرقه های ما در میان فرقه های صوفی البته صوفیان یک فرقه دارن نام فرقه اهل حق نمیدونم باشون آشنا هستین و یا شما. من با اینا بسیار زیاد معنوزم چون آدمای خوبیان به لحاظ رفتار اجتماعیشون آدم های سالمی هن اما خب اعتقاد مشکل داره دیگه اونجا اینها ها معتقدن این اعتقاد در میان اونها فقط هست که هر انسانی هزار و یک نوبت به این دنیا باز بر میگرده که بین میگن دون به دون شدن یعنی جامعه به جامعه شدن در کتاب هاشون هم فراوان این قضیه آمده است اما ما در خود قرآن کریم دقیقا مقایر این مطلب رو پیدا میکنیم و قرآن آنی رو میگوید که عقلم همون رو میگه علمم همون رو میگه و فطرت انسان هم همون رو میگه قرآن در سوری مومنون یه آیه است نظرم دور بر آیه صد باشه اگه اشتباه نکرده باشه حتی اذا جاء احد هم الموت قال رب رجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلوها و من وراهم برزخون اله یومی و بفدون هنگامی که زمانم بر یک انسانی میرسه که این انسان در این دنیا قدر خودشو ندونسته چون قدر خودشو ندونسته خودشو گم کرده ها روزا به هر رای کشته شده وقت مردن چون پردا از برابر چشمان انسان به کنار می رود. چشم های دیگر انسان باز میشه بهش میگییم چشم های برزخی قرآن میگه ورقت کن تفی قفلت منهاا و کشف نان کهطاک و با سر حدید. انسان تو از این حالت و از این مرحله و از این جا به جا شدن تو در قفلت بودی ما پرده رو از برابر چشمانت به کنار زدیم دیدگان امروز تیزبین شد لذا در موقع مردن انسان دیدگان چشمش و سرش از کار میفته دیدگان سر رو باطنش باز می شود و میبینه که آنچه پیغمبران گفتن درسته نخواستن بازی کنن نخواستن مغازه درست بکنن پیغمبران مبذف طرف خدا بودن بودم به عنوان لطف خودش بنده ها اعلام کرده خطر خودتون رو تو این دنیا بدونید که اگر ندانید وقتی بخواید برید مشکل خواهید داشت یعنی سرمایه رو گرفتین و به هدر دادین خلاصش میشه میشید خواهید شد میگم بی حرفا چی چیه کی از اون طرف اومده خبر بیاره این که میزنن دیگه خبر داریم چه کی اومد از بردن خبر بیاره برامون ای بابا اینا رو اخوندا ساختن اینا رو میکنن ورا میگه لغت فی غفله من از این حالت و از این مرحله تو در غفلت و در بقای در در حالت عدم شعور بودی و اون وقت حالش کار کردیم و کشف نا انچقتاک این پرده رو از برابر چشمان تو به کنار زدیم و بصرو کلی یوم هدید امروز دیدگان تو تیزبین شدند انسان می‌بینه اون وقت آه فرشته ها رو میبینه دارن سراغش میان اونه که داره قرآن نقلش میکنه خب وای به حالشون وای به حالشون چنان میان به قول قرآن نمیبینن اطرافیان داره سری مرده الان چی میاد فرشته ها نیروه های نامری خدا هستن میزننشون یه از ربو اونه بجوه هم و عدبار هم قرآن میگه اینا میزنن پشتشون میزنن به صورتاشون و به اینا میگن تو در شما در دنیا چه خراب کاری های کردید خیل. راهی رفتید که رضای خدا توش نبود آه. و کیف اذا سوریه به نام سوریه پیغمبر اکرم تو خود قرآن کریمه اینا یه اونجاست و کیف اذا توفت هم الملائکه یاد ربون وجوه هم و عدبار هم زالکه به انه هم و ما از خطالله و کره رزوانه هم و احبات اعمال ها میزنن میگن رای دفتی که رضای خدا توش نبوده در اون حالت میبینن دیگه این فرشته ها رو میبینن از طرف دیگه نگاه میکنن و جهنم برزخی رو میبینن از اون طرف بهشت برزخی رو میبینن پهشون همه رو نشون میدن شون چیزی با خودشون نبردن میگن خدایا یه بار دیگه با ایزده برگردیم آنچه را که کسب نکردین در این برگشتمون کسب بکنی کلا کلا یعنی محال این مطلب واقع بشه این درخواست اجابت نمیشه یه بار زندگی وسطون بود انسانی که مرگش میرسه دیگه به حیات بر نمی و من ورائهم برزخون الى یومه یا یو بسون بایسترشون هم یک زندگی برام زندگی برزخی خواهد بود قضا بازگشت به دنیا و عود روح به یک بدن دیگر که همین بحث تناسخ باشه از نظر قرآن به کلی مردوده رضا هیچ بچه شبهی وجود نداره همطور کرد بفرمایید آلت چی؟ گردونه انقد روح داخل جسم دیگه ای میره که پاک بشه و اون گردون خارج بشه و حالا بیاد بیرون بعد جهان ما اعتقاد داریم که قبل از ما بوده الان ما داریم زندگی ما به آخرت هم اعتقاد داریم قوش. که بعد از ما حالا در آخرت حالا خوب اعمال خوب یا رو اونجا نتیجه میگیره. خب این که مثلا خب ما اونجا زن... یه حالت خب ما زندگی کردیم تو برزخ اینجا داریم زندگی میکنیم آخرت تا بریم به بهشت که حالت تناسخ اینه که از اون گردون خارج بشیم نه من حالا تو بحث اولتون بحث دارم اوناست خب حالا به قول حضرات که دارن میگن که ما در گردونه میچرخیم تا پاک بشیم آیا تنها راه پاک شدن ما این است که ما تو این گردونه بچرخی مرتب در بدنهای دیگه داخل بشیم را دیگری وجود نداره تناش همینه داشت هم یکیه این خدا گذشه دیگه نیست اون خدا میتونه ببخش و بیا مرزه چون نیاز به این حرف هاست و دانش خلاف این اصلا حرف میزنه به شما حقل هم خلاف این میگه لازمه این قضیه اینه که قرار باشه انسان چیکار کنه تو بدنهای مختلف به قول شما گردش کنه دیگه نیست باید حتما تعداد افرادی که به دنیا میان بایده که میمیرن یک سال باشن چنینه یا همواره تعداد موالی بیشتر از وفعیاته اونایی که به دنیا میان مرتب زیادتر از اون هستن که از دنیا میرن اگه چنین باشه یه سیر آدام که دنیا میان بی روح میمونن به این ترتیب مطلب دگر مطلب دگر یک بدنی آدم باش کار کرده. بنده. روح من بدنم وسیله کارشه دیگه نیست اینجور کسب کمالات روح من توسط بدنم انجام میگیره درسته؟ من دوبارم توی این دنیا مدارجی رو تقیی کردم فرص فریم از مدرجی به نام کودگستان شروع کردم به دانشا قدمش کردم حالا بندر رو از دنیا بردن به همون تعبیل که شما گفتی مجددن روح بنده رو تعلق به بید بدن بدن که کلاس اول همونیز بخواد درس بخونه آخره کی میخواد این کارو و همین که خدای مطال مورد در گردونی داره میچرخونه این ها کجوم و کدوم من به قرآنی یا اسلامی مدارو بردیم بیرون؟ نه حرف خودمون، نه حرف اونا پس بنابراین هیچ بحث شبهی وجود نداره اما بحث آلم با این بحث اصلا متوابطه ما عوالم متعدد داشتیم، دقیق داشته باشید اشتباه نکنید نه اینکه یک بدن در این دنیا خلاصه این روحه به بدنهای مختلف تعلق میگیره ما بحثمون تو این دنیاست ما یک زندگی چی داشتیم به قول شما عالم ذری داشتیم اون عالم ذری خلقت ارواح قبل الابدان بوده یعنی خدای متعال برای هر انسان روحی خاص او خلق کرده روح شما خاص خودتونه روح خواهرت خاص خودشه فقط عالم روحانی بوده عالم ذر اسمش اینه و ما خود خدا از ارواح ما پیمان‌هایی گرفت که حالا وارد باعثه می‌خوام بشم از بحث بمونم آورده ما رو به این دنیا آوردن ما به این دنیا اصلا یک نشئه دیگریست غیرت غیر از نشئه عالم ذره شما در این دنیا زندگیمون یعنی روح و جسد با هم دیگه عالم ذره اینجوری بوده یعنی تعلق روح به جسم در این دنیا درست شد وقتی هم که از این دنیا بیرون جس زیر خاک باز یک دیگری میشه بس ببینید که اصلاً به هیچ وجه منر بوجود شباهتی وجود نداره به لحاظ عقلی به لحاظ منطقی به لحاظ قرآنی یه اصلاً قابل اثبات نیستش بعدم خدای متعال چی؟ بندر رو میخواد دومرته به, به این دنیا تعلق بده به این بدن دیگری من با بدن دیگری گناه کردم حالا بعد مکافات این بدن تازه بکشه آخه در <تصفح> دربر آهنگری به ششای زارن گردن مزگری این که خجا با ایداره سازگاره پس خدای متعال بله رحیم است ودود است عطوف است بنده میره در خود حتی تو اون لحظه مردنش خدایا غلط کردم نفهمیدم قصد مخالفت داشتم خدا از اون میگذره چرا این کار نکنه حال نه بری حتما توی بدر دیگری خلاصه پدرت هم به دست بدم من با لطف عمیم خدا اصلا نمیخونه این قضیه توجه فرمودید این که اصلا اشتراکی ما نداریم که بگیم خیلی جا بین اینها و بین حرفهای اسلامی چیکار کردیم ما تونستیم اشتراک پیدا کنیم اصلا هم شباهتی نداریم ما بفرمایید این یه میکروفون رو بدیم به این حاج خانم جلوی شما من راجع به آیه 71 که سوره مریم خواستم از طریق. حضورتون سوال بفتیم ترجمهش میشه و هیچ ایک از شما نوع بشر باقی نموند جزان که به دوزه وارد شود و این حکم حتمی پرورده بارده و این من کم الا واردها کان علا ربکا حتما مقضیه این آیه شریف است این ورود حواست جمع باشه خانم دخول نیستش اشتباه نکنیه وقتی دوغت درست نگیریمش ما وقتی این اشتباه هم میافتیم در قیامت وقتی میخوان محاسبه اعمال کنن محاسبه تموم میشه اونایی که کارشون خراب خوب جهنمی هستند دیگه اون که حالا تو خول جهنمه اونها هم کارشون درسته اونها رو نشون میدن بهشون ورود به این معناست این جهنم نگاه کن اگر لطف خدا بر تو نبود تو در اینجا بود جا میگرفتی یا اون میگه الحمدلله رب العالمین یه حرارتکی از جهنم بهش میچشونن که مراقب باش که خدا رو بکن که به اون جهنم نیفتدی این معنی هایی هست خدا که به نماز ما نیاز ندارد چرا باید نماز خدا به هیچی ما نیاز نداره. اون خدایی که نیاز به نماز بنده داشته باشی به درد خدایی نمیخوره هستن خدایی متعال نماز رو مقرر کرده مثل بقیه یعبادات برای من من نیاز مندم. اگر شما فلسفه قلقت اومد به نظر قرار بدید فلسفه خلقت غیر از این نخواهد بود خدای متعال ما رو آورده اینجا به لطف عمیمش شما که توکل خدا نبودیم خدا بخشیده فیض هستی به ما نیست این جور اونم بخششیشه پس همهش بر مبنای لطفش بوده میخواد ما از اینجا چی کنیم توشه برداریم بهره برگیریم کمال پیدا کنیم یکی از وصال کمالی ما بلکه بزرگترین وسیله کاملی ما نماز اگر نماز ما رو حرکت نمیده چون روح نماز رو نفهمیدیم ما اگر انسان روح نماز رو در یابد میابد می از سلات و معراج المؤمن او میره بالاده این دختر خانم ما حدیث خانم که باشه آشنا هستین حد بنده که به نماز سوال میکنه در دل شب گفتم واجب نیست اما چرا در دل شب اینقدر اصرار دارن که بخونید نماز شب تونه بخونید خوابن. تمرکز خیلی راحت تر فراهم میشه تو نماز شبتون وقت آدم به قول امام حسین جمعه تو زیارات عرفش داره یا من از آقا اهبا های خدایی که بنده های خودت شیرینی این که بیشنن با تو حرف بزنن چشوندی اصلا خود با خدا نشستن خودش مزهی داره که با هیچ مزهی در دنیا برابری نمیکنه کنه و همون زبون عادی خود دوماش حرف بزنی زبون فارسی معمولی دلش چه مزهی داره هم صحبتی با خود داشته باشید این لذیسترین لذات الان داره برابره هیچی نیستش انسان میابد داره صافت میشه داره تلتیف میشه داره تذکیه میشه ولی ما از این کارا داریم میکنم اما. اگر متوجه عباراتی که بر زبان جاری میکنیم باشید یاکن عبد و یاکن استعین او اقیانوس در اینجا مطلب خوابیده اوگیانوس صرفا خدا فقط تو رو عبادت میکنی عبادت شایسته ذا و تقدس الوحیت فقط و فقط بندگان را نرسد که انسان به جای خدا بگیره مقبون میشه زیانکار انسان پروردگار مهربانی که اینقدر انسان لط داره آن من نمخواب بارده این بحث بشم والله اون خدایی که قران کریم معرفی میکن انقدر به این انسان نزدیکه انقدر به این انسان مهربونه چیزی براتون بگم بعدیسا دیگه گفتیم دیگه پدر مادر بچشون دوست دارن برای دوستارون خیلی هم دوست دارن چه حشم به نظر روانشناسی مشخصه چیه که چرا پدر و مادر بچه رو دوست دارنشون حالا خدا هم رو دوست داره آله دوست داره اصلا سنخ دوست داشتن خدا بندگانش رو به هیچ بچ با سنخ دوست داشتن پدر و مادر بچه هاشون رو هرگز و به هیچ بچه منال وجو شبیه هم دیگه نیستش. مثالش هم خیلی روشنه بچه تو خیلی دوست داری مثل آقای درودگر و بچه نازلینش ها؟ خیلی هم همین بچه نازلین پیش آقای درودگر یه روز در فرمون نبره براش دیگه فلان کار رو میگه نمی کنم. بگو فلان کارو کن بره برعکسش بکنه آخرش آقا دروغا بهش میگه برو گم شو خیلی هم خاته شو برو گم شو نمیخوام رو ببینم اینجور هست یا نیستش مادرای اینجوری هستن یا نیستن بچه سرتقی میکنه به قول ما تو روز 20 تا با مادر مخالفت ما میکنه برو گم شو آچی بی تربیت بد یک بار شما از خدای متعال برو گم شوشیدید روزی 100 دفعه من مخالفت می‌کنی باش هر گناه ما یک مخالفت با خداست این خدای مهربان چی میگه قل یا عباد الودین اشرفو علا انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله قربونش برم ان الله یغفر الذنوب جميعا بندهایی که خیلی گناه کردین ها خیلی گناه کردی لا تقنطوا من رحمت الله از رحمت خدا معیوست نشید. بیان مولای ما امیر المومنینه. فرمود کسی است که مردم رو از رحمت خدا معیوست نکنه. این نیاید از عذاب خدا و جهنم هست. همهش هم درسته. اما یه جور نکنه که مردم بگن ما که حالا جهنمی شدیم به درک آب که از سر گذرد شکل نشست نی. پس همه چی میکنیم. نکنید این کار رو. مردم اگه به لطف خدا امیدوار بکنید خدا میبخشه خدا آمرزنده است خدا مهربانه قل یا عباد الالدین اشرفوا علو عنفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا دو تا گناه داریم تو اسلام که اینا دیگه خدا هرگز نمیگذره ازش یک گناه شرک در برابر خدا قدرت چجوری قرار بگیره هر چی بخواد باشه یک گناه میدونید چی خدا نمیگذره ازش یه از رحمت خداست یعنی بگی خدا از من نمیگذره خدا از این گفتت نمیگذره اون وقت خدا میگذره انشالله خدا میگذره حق و ناسی داری برو مردم ببین بالاخره اون هم سو بشرن دیگه بین تو خدا مردشی از خدا میگذره یه سری نماز داره بگیر دارده برو بگیم بخور بخون مستحال دارم بگیم میگذره چیزی نیست که نگذره حالا یاکن ویاک نستعین آدم کوچولو بسیار بسیار محدود بسیار ناتوان یک بنده ضعیف با منبع قدرت تماس میگیره ویاک نستعین از تو یاری می جویم این ارتباط با خداست که به انسان قدرت میده نماز اینجوری میکنه چشم نماز اینجوری میکنه کار آدم رو سوریه حمدشو بگی بخون اوه. همون حمدی که میخوایی بخونه میدونی داره چقدر مدتب خوابیده چقدر خوابیده هرچقدر این معانی رو بیشتر بدونی این مفاهم بیشتر بدونی در نماز بیشتر غرق میشی و قرغ شدن من یعنی بالا رفتن من نه به خدا رسیدن خدا رسیدن حرف مزخرفیست و است که صوفیه درستش کردم ما به خدا نمیرسیم ما تقرب الالله پیدا میکنیم. برو بالاتر هی hey, hey, بی نهایت این حرکت تو برو بالایی برو بالا برو یه نماز شب بخون پنی درجه بده ده تا آیه قرآن بخون ده درجه بده بسردن هم بگم اینا رو اینا کمال توست لذا نماز خوندان برای خدا منفعت نداره هیچ چیزی برای خدا چون خدا نیازی نداره خدا در بی نیازی مطلقش هستی رو حض کرده توجه فرمودید برای به من چه نیازی داره؟ به نماز من که چه ارز کنم؟ نماز بنده که پیازم بیشتر نیستش که چه نیاز داره؟ نماز من من رو بالا میبرد دقت داشته باشید. اون خدای مهربان برای من نردبون قرار داده بفهمشون موشیم خسپکی؟ ببهش شده این که اگر که مثلا میگین که شرک این ناخداگاه تو زندگی روزمره ما به وجود میاد مثلا توی اداره میریم انتظار داریم که اون رئیس ناخداگاه اصلا خدا رو فراموش میکنیم یا مثلا یه کسی دیگه گره کار ما رو باز کنیم یعنی ناخداگاه شریکی از کسی دیگه مدد خواستیم این یکی یکی هم این که وقتی که انقدر که خدا آدل و که همه گناه ها رو میبخشه پس برای چیه جهنم ایجاد میشه بله حسفانم و زیادتونی ها جوابی سال آخرتون رو اول بتین یه ع گناه کردن توفیق توبه هم پیدا نمی‌کنن. باید با اینا چه ما بهله کرد از نظر شما؟ یه سری افرادن که اصلاً میگن خدا بی خدا. اصلاً توبه هم نیست دا یعنی کارشون در علو و سرکشی نسبت به خدای متعال به جای نمی‌رسه میگن خدای وجود نداره. ویلا چه ما بهله بات بکنیم؟ جنابالی یه عمری گفتی خدا خدا، نماز خوندی، روزه گرفتی. اینا رو یکسان خدا قرار بده به نظر شما؟ عنوان پاداش شما چی چیواد بد بده؟ یه جایی در برابر کارات پاداش در واقع تقدیر از شماست وگرنه پاداش خدا در برابر کارهای من نیست. او هرچی بدهد از همه کارهای من زیادتره. ولی شما خودم فردا اعتراض میکنی خدا چی داری میگی؟ گر روزه گرفتم چه روزه بگیر. این اصلا میگه روزه چی چیه؟ یک شان قرابده شما رو با ایشون نه نمیشه اینجور این بحث اولتون، بحث دومتون چه نه؟ شرک معناش اینه که انسان در هستی برای غیر خدا به صورت اصالتی یک حالت تأثیری قرار بده برات به بسان بزنم میری خدمت امام رضا علیه سلات و سلام پسر پیغمبر پسر موسف نجفر قرمونت برم خب من بچم مریضه چرا بردیم گفتن این رسمیه مثلا میگم سرطان خونه همه کارم کردم نشد چهارم ناچره خدمدم سلاخت از شما شفا بده باید اینجا رو دارم میگم من ریزش اینجاست در همون حالی که داری این حرفا رو میزنی من با شما برخورد میکنم میگم خوارجون تو که این حرفا رو داری میزنی معتقدی امام رضا خودش میتونه شفا بده یعنی جای خدا نشسته پاسخ تو اینجا حد و مرز شرک و تویید رو مشخصش بیکنه میگه نه بابا من که چی غلطی کردم میگم امام رضا بنده خداست. تو بنده خوب خدا هستی من تو رو بین خود به خدا شفی و واسطه قرار بدم که من درخواستم رو تو و عرض خدای مطال برسونی این یه بحثه یه وقت میگی نه معتقدم امام رضا بنده خدا هست منطقه خدای مطال چون خاصی او رو با امان وسیعه پیغمبر انتخاب کنه یک سری قدرت ها رو هم خدا به او داده دقت داشته باشید این و با این قدرت ها میتونه خیلی کارا انجام بده به کارها خدا ده اینه یه وقتا میگی بله بنده واقعا معتقدم امام رضا خود خداس ای دو این دومیه شرکه این آخریه واگرنه پستای مملکتی خب بله هست کی به اون پسته رو داده خدا بهش داده خدا میگه میخوای کره در بشه سراغ همو برو من به فرمان خدا دارم سراغ اون میرم از این بالاتر برو جدی‌تر خدا رزاق هست یا نیستش بله خدا رزاقه مگه نمیگه خودش رزاق هستم خب اصلا سر کار نه میخواد بریم تو خونهت بگی بشین اینجوری ده هم تنوا خدای توش بیریز میشم چیزی اگر رزاق نیست خودش چرا؟ من رزاقم اونتها رزقم رو از مسیر وسیله ها میخوام به تو بدم تو وسیله رو جای خدا نمیخواد بگیری این میشه شرکون <میشم> روشن شد حضرت ایسا مسی به دلیل زمینی نبودن سلب پدری به باستی اینو دید. دونگا کی رسولی آقای نازمی اورد چی می‌خواست؟ اونش خود بگوین چی می‌خواست بگی بده بهش آقای نازمی چی بخواد بگه خیلی‌ها اعتقاد دارن که میگن حضرت مسیح به خاطر اینکه حالا به وسیله روح خدا خلول کرده تو حضرت مریم و بچه دار شده که حضرت مسیح به دنیا آمده میگن که پاکتر از حضرت محمد هستش اوتوال با والسلام خب این روح خدا که حلول در حضرت مرگم کرده این حرف بسیار باطلیست و بدون هیچ گونه کونه پشبانه. فَعَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرَنْ سَوِیَا من این مقدم براتون بگم تا این قضیه خیلی راحت حل بشه. برای اینکه فرزندی یا در واقع یک فرد نوعی درست بشه خدای مطال در هستی قانون قرار داده. میگه چی؟ میگه مردی با زدی درست ازدواج کرم از شما که رفتی دختر خانم از مسید به اسلام آوردی الحمدلله و باش ازدواج کردیم. اونجا چه میشود اسفرمتوزی جناباری با اوورو ترکیب بشو و بالاخره ایک نوع بچه نوع بدهد به شما؟ این قاده طبیعیه. خدا در مورد پیغمبران خیلی از این وقت قاده طبیعی رو خودش به هم میزنه. چون میتونه. یه وقت نگیم چون قوانین هستی اینجوره خدا خلاف قوانین نمی کنه نه اگه همچه ار بزنیم خدا رو محدود کردیم خدا قوانین رو قرار داده خودش هم میتونه این قوانین رو چه بکنه؟ به هم بریزه نیست اینجور؟ اون به هم ریختن قوانین هم طبق قوانین خاص خودش انجام میگیره داشته به چی ما در جهان بیولوژی، یعنی دانشی بیولوژی یه بحث علمی داریم تحت یا پرتنوجنزیست به قول انگلیسا پرتنوجنز یعنی بکرزایی یعنی چی بکرزایی؟ یعنی یک موجود ماده بدون آن که با نری تماس برقرار کرده باشه بچه دار بشه این میشه یا نمیشه آره میشه شاکلیب یک نانشپند امریکاییه این کار کرده یه سری تخمای قرباقره گرفته یا های ماده رو تخمه قورباغه ماده رو گرفته در اون محیطی قرار داده که در اون محیط مقدار یک ماده شیمیایی اضافه کرده نطفه نر نبوده ها تو اون به صلا مایه چی بوده یک ماده شیمیایی بوده دیدی تا این تخپا خوشون تابیدشتن به قورباغه یعنی توانست اون ماده شیمیایی تحریک بکنه ابول رو تخمکه قورباغه ماده که بشه قورباغه واقعی پس حتما بشرم توانسته مقدار این راه رو بره لازم نیست برای ایجاد موجود نوع حالت ازدواج و زوجت چی بشه صورت بگیره یه بحث علمیه در قرباقه کردن در خیلی از حشرات کردن درست شد علمی که پس امکان قضیه هست حالا قرآن کریم یه تیکهی میگه کنه که ساب زیرکی هستن در قرآن برداششو میکنن دیگه ارسلنا علیها روحنا فتمثلت الالهه بشران سبيو روح روح خدا یعنی فرشته خدا یعنی جبرئیل خدا فرستاد منتها این جبرئیل رو خدا بهش گفت تمثل پیدا کن به شکل آدم در بیاد بیرون حالا خوب گوش بده ماریم دختر بسیار پاکیه بسیار پاک است نیست انقدر است که خدای متعال او رو به عنوان یک منظوره قبول میکنه در بیت المقدس خیلی پاکه لازم می‌بینی یه یک جوونه خوشگل در برابر سبس شد اینم تنهاست حالت انی عوض و رحمان منک این کنت تقییه آه. او جبرین و نشلاخ که یه جوون نیست توی محیط خلاصه دنج و بدون به سلاح چیز مزاحم مقابل سبس شده او خب اون که من استنباد آیه قرآن میکنم همینه همین دیدن حضرت مریم سلامون الله علیه ها جبریر رو به این شکل و با این ذهنیتی که نکنه برای من خیال سو داشته باشه مایه ترس شده خب اگر قرار باشه یه ماده شیمیهی بیاد اولها رو تحریک بکنه که قرباقه بشن اینجام این آمله ترس ممکنه کار رو بکنه ربطه به اینکه خدا درونه او حول اصلاحی حرفا نداره که خب ساختن در این شهر رو برمیگنش و بعد بزرگی حضرت رسول اکرم که درود و سلام خدا بر نسبت به عزرتی ایسا مسیح مثل بزرگی خورشید بر ستارهای خیلی خیلی کوچک میبونه دم جهتش خیلی روشنه بسیار روشنه ایسا مسیح وقتی موقع به پیغمبر ما به شارت بدهد حتی انجیل یوهنهای فعلی که دست خورده است ولی این مقدارشو زبط کرد که من باید بروم تا او بیاید و همه سخنان رو قراره او برای شما بگوید من تیکه کوچی براتون گفتم اون همچین عظمتی. به قول برنابا که ذرات سعی می میگن اصلا برنابا انجین نداشته که داشته ایسا مسیح میگه من مقامم در برابر او آنچنان است که من لیاقت بتن بند کبش او رو هم ندارم و داره درست میگه این حرف رو. اب بیانات خود ایسا مسی تو خودم این انجین چهارکانه فعلی. نشوندهنده دهنده عظمت مقام پیغمبر بزرگوار اسلامه به اضافین این که برتون ارز کردیم ما وقتی امام زمان ظهور کند آخر دنیا نه معلوم نیستی قضیه کی گفته ای رو؟ امام زمان ظهور میکنه انشالله خدا هم بخوایی زودتر ظهور بکنه سی سال عدقل حکومت خواهد کرد و بعد از این که ایشون حکومت رو کرد و قرار شد از دنیا بره با بحث رجعت خواهید داشته از اون وقت. عزت عبا عبدالله و لوسیم برمیگرده تو این دنیا حکومت خواهد کرد چه حکومتی و بعد از اونم باز اهمه دیگر برمیگردند اگر در قرآن همه علمی موجوده است چرا همیشه موضوعات علمی از طرف دانشمندان اروپا و امریکا کشمی شود البته همچین اینجوری نیستش حرکت زمین رو دانشمندان اسلامی قبل از گلیله کپلر و کپرنیک بیانش کردن به کتاب اسلام و حیعت مراجعه کنید اونجا تو اونجا براتون تون میگه چقدر دانشمندان مسلمان قبل از قرن 16 و, و میلادی که اینا بودن بعض حرکت زمین مطرح کرده بودن بر مبنای آیات قرآن جریب حالاش هم بنده کلی مرتب تو قرآن دارم منوبراتون بگم که انو علمش نرسیده که نگویند منتظرین دیگران بگویند و شما بگی که حالا قرارم گفته من پیش پیش میگم که کسی ک بیده انسان مرکب از دو قسمت یک خمیره و باطن شر داره یک خمیره و باطن نیک داره خب انسان آزاده انتخابگر است انسان به انتخاب خودش یا به سو انتخاب خودش رایی رو نمی رود که رضای خود توش باشه بدبختی هم خودش بکشه یعنی چیشیش غیر قابله عمله ما خیلی میکنیم اسلام یه دونه همچین دسمالیه یا ذرورقیه که تو دسمال پیچیدن تو گذاشتنش. اسلام متن زندگی ماست متن زندگی ماست. آبرانندگی اتوبوس جمعیت سوال یه یراغ رو ترمز نزن میشه اسلام جاده بارندگی شده ترمز بیخودی نکن میشه اسلام حرف میزنی راست بگو میشه اسلام آخه چی چیه که غیر قابل پیاده کردنه هیچ چیزش هست غیر قابل پیاده کردن باشه ما ها وقتی نخواهیم یک بحث دیگری است چه میکنیم تا حایل بین ما و قرآن برطرف شود. از من سوال میکنید اولین راش این که بری زبان قرآن یاد بگیری بابا جان ما عربی رو باید یاد بگیری اون وقت حلاوت قرآن فهمی رو اون وقت در میابید آدم قطعیه تو هر زبانی همینجوره الان شما هم مثل اوتلو رو میخونیم مال شکسپیره چی برای تو اوتلو هست کینگ لیر مثلا شاها لیر کتاب خیلی معمولی رومان برای که اون لطافتی که در زبان انگلیسی کلاسیک هست من بلد نیستم فارسی ما نتوست من بکنه کتاب دریاچه مالی لامارتین فرانسه هست زبان فرانسه خیلی زیباتر انگلیسیه خب میگید میخونید بگید بابا این چیک دنیا میگه لامارتینو و کتاب دریاچهش خب بلکه من فرانسه بلد نیستم اینا فرانسه نیست اگر برم زبان فرانسه رو بخونم مسلط به این زبان بشم بعد رو او کتاب رو بخونم دریاچه بخونم اون وقت لذت اون کتاب رو درکش میکنم این بالا هر زبانیه حالا برای درک لذت زیبایی های پایان ناپذیر قرآن کریم یک راه بیشتر نیست ترجمه زیاد داریم در مورد قرآن ترجمه های خوبم داریم ولی من توصیه میکنم کسی میخواد واقعا تو این زمینه. این 2 سال به خودش بزنه بیشتر نمیاه 2 سال 2 سال یه زبان عربی رو یاد بگیره هم گرامر و هم لغت و بره سراغ قران ببینید این قران حالا که یاد گرفته زبان عربی رو با قرانی که میره ترجمه بشه بخون با هم دیگه چقدر فرق میکنه خدا به حق پیغمبر ان شاء الله به همه ما توفیق فهم قران توفیق عمل به قران را عنایت بفرماید خدا رو قسم میدیم به ایامی که در پیش روی داریم که اولین شهادت امام جواد علیه السلام و سلام از تو بعد اید قربان و بعد هم اید قدیر. خدا امر فرج این بزرگوار امام زمان ما رو هرچه زودتر اصلاح بفرماید مملکت ما رو از تطاول بیگانگان و از اینکه که این مملکت تمع کنند اونه که به خون ما تشنه هستند و نمیتونند اسلام را ببینن و نمیتوانند اسلام راستین که تشیع باشد را ببینند خدا این مملکت رو از شر همشون حفظ بفرماید انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله چند تا سوال بوده بوده ساعت نوم آنجا ترک کرده باشیم اگر کسی خیلی علاق که سوال جواب داده بشه تشریف بیاره جواب بدم اگر برای دو هفته بعد انشاءالله این سوالاتی که جواب داده نشده است و جواب خواهیم داد یه صدبات بفرسیم